بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وشارك هاتم بفرمده خدا كنتم خير أمة اخرجت للناس ودى الحديث هم دارين كرسول الله صلى الله عليه وسلم بفرميان أنتم موفقون سبعين أمة شما أحطاد من أمة راب يعني أحطاد من أمة ولو هرشان كفتان كفهم عدد اعتبار ندار أمتها يزيادة أمتها نكاس إن أمتها أمت إسلامة fahl at that variety, O Allah. For the best saint these only. Thus the amazing person meaning to this planet is the best angels. What we said is that comes with this religion. So, the human beings性 will be making himself a strongension. شکر این نعمت باشه و با بدونش چه نعمتی خدا بهشت داره این نعمت بزرگ رو خدا به هدات شکر گزار باش یک شخص در زمان تابعین یک از تابعین میگه یک از اصحاب میگه میگه کیف با شما بوده صحابی با پیانبر بودی جنگیدید دیدی دی شنیدید خودت مستقیما ولی ما نه تو صاحبین راض میشه میگه از کجا معلوم که اگر در زمان پیانبر بودی ابو جهل میودی از کجا معلوم که بولهاب نمیودی یکی از ما میدونه اگر از زمان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بود چی می بود نمیدوند از ما شکزار باشیم سفاسگزار خدا باشیم که مسلمانی مسلمان زایدهی و این فضیلت و این اختیار و این انتخاب رو خداون به همون داد اینجا در دا زیر بول فضل اسلام آلی بششاره میکن اینجا معلف فرموده خداوند اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینم خب یعنی اینجا میخواد فضیلت اسلام را یاد بکنه با توجه به چی؟ بفرمایید خداوند alyum akmaltu lakum dinakum. ما میدونیم که این آیه در عرفه در حجۃ البدا بر رسول الله صلی الله علیه و نازل میشه بر اینکه خداوند دینش رو کامل کرده و یعنی نعمتش اتمامت علیکم نعمت و رضاتهم الاسلام. حالا من تک تک این جملاتی که در این آیه میخوام شرح بدم. خب اینجا اشاره میکنه alyum akmaltu lakum dinakum اليوم أكملت لكم دينكم إن دين دين خاصي كناك وضوان درابج اشار مكو إن دينكم ديني كالصحابة بودان وش ديني بودان يهودية وناطرانيات ومجوزيات يا بودعي دين اسلام إن ديني كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرستاد شده بسيوم دين اسلام شون در فضيلت در فضيلت اسلام وزك بي کنم ومخواد بيين آية استدلال بکنه برحمي فضيلت اسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم فهمتي و نعمتهم راه با این اسلام بر شما اتمام کرده اتمامت عليكم نعمتي اتمام نعمات این نعمت یا ديني یا دنيا بي فمیتو نهار دوتا واشد هم نعمت الدين و هم نعمت الدنيا نعمت ديني نشد الله صلى الله عليه وسلم لفما اتركتكم على المحجة البيضاء ليل وقت نهاره روی الدليل وبرهان واشکار وواضح وصفی فاغ روشان خرارت امداده قدرتكم على المحجة البيضاء ليلها كناره شبته برج شروشن يعني ما ما له دليل وبرهان واضح اشكاري قرار قرر ددمون دليل وبرهان شي بود قران و سنت بودي كرسول الله صلى الله عليه وسلم بيفهم ده يتفرق حتى يرضى عليه الحوض كالسنه سنت القران جدال نميشن تا انكه إن به در حوض ورتن يعني توقيام قيام ساعتها متوقعين اگر قران اشاره يكون بحفظ حفظ قران ان نحن نزلنا الذكره وان له ما قرآن را حفظ می اینجا اشاره بچید یه حفظ سنت تا کی تا خیام ساعت تا وقتی که حش برپا بشه بچین ل تفر قرآن و سنت از هم دیگه جدا نمیشن تا اینکه بر من بر حوز وارد بشه. یعنی خداون متهده بچی حفظ قرآن و حفظ سنت این محجس با و دلیل و واضح عاشکاری هست که برای ما خدا گذاشته و این نعمت تنها تنها دیری نیست تا گفتن نحد دوویبی هم هست. یعنی تنها این نعمت که خداوند در اسلام ما گذاشته تنها نعمت دینی و اخروی نیست بلکه نعمت هم هست همون که خداوند در قرآن میگه من اعمل الصالحات منذكرن و انذا وهو مؤمن فلنحيینه حیات طيبه فلنحيینه حیات الطيبین اجر فضیلت اسلام یعنی کسانی که زن و اردش ایمان آوردن تسلیم امر و خدا شدن و هو مؤمن پلا نخی نهوع را زندگی میکنیم. بر چه چی چیزی زگانش هست زندگیگانی خوب و خوش نخی نه و حیاطن و یهبر یعنی زندگی با تولیه و آرامش و نیکی و خوبی بهش خواهیم داد. این پاداشه پاداش هست هستننی خدابان در این آقادار را اشاره میکنه به اون نرمتی که در مقابل ایمانمون به خدا و تصیممون به شرع خدا خدا بهبمون میده. این نرمتفضیلت اسلام یعنی اگر میخواید از هم غم از فشار خون از نمیدونم روانی بودن افسرده بودن اگر میخوای نجات بیاوی اگر در زندگی میخواد آرامش داشته باشی احساس طمعنینه و آرامش و دلتنگی از دور بشه زندگی نیکی و طیبهی و حیات زیبا و خوبی داشته باشی راهت چیه؟ راهت عمله به اسلامه راهت تسلیم شدن به چیه؟ به شرع خوده پس این مشده هست پس این فضیلت بشارت، بر کسانی که تکلیف امر خدا شدن به خاطر همین ادریس علیه السلام در اوج خوشی به سر می برد در اوج عبودیت به سر می برد با اون مریضیش با اون محتاجیش که زنش میرفت خدمتگزاری مردو می‌کرد تا پولی به در تا پولی بهش بدن بیاد خرج شوهرش بکنه خرج زندگیش بکنه تا اینکه دیگه مردم به اون زنش کار نمیدند بعد اونجا هست که زنش ازش می‌خواد که دعا کن حداقل مریضیت خوب این بدبینی مردم از بین بره اونجا ناراحت میشه میگه اگر سالم شدم شلاقت میزنم صد در به شلاقش میزنم میزنم شلاقت میزنم که بعد خدا بهش دستور میده که برگای نخل نخلو بردار با هم صد تا با هم جمع بکنه یک ضربه بزنه از اون که اون زن جزاش این نبود که اینطوری میزنه که اینقدر زحمت کشید جزاش شلاق خوردن نبود که بعد دیگه درهای روزی به سوی این پیامبر خدا باز میشه بعد بعدش به حس رضایت به تقديرات و مقدرات خداوند همون شاستزندی که من بهش اشاره کردم این پیش نمیاد جز با علم و عمل صالح جز با علم مثل ابراهیم علیه السلام شاستزنده به خدا داشت این باید همیشه مد نظر نظر ما باشه انا لننصر روسلنا والذین آمنوا اونایی که ایمان وردن و پیامبران خداوند میگه که ما نصرتشون خواهیم داد زندان اگر نگردیدی چلاغ اگر خوردی اگر کشته شدی بدون که خداوند نصرتت رو چقدر خونا هستن که ریخته میشن ولی با اون خون دینی نصرت میابه شیخ زیایی شیخ احمد میرین سیاد کسانی که برای دعوت کشته شدن آیا خون اونها جز این بود که رشدی برای دعوت بود نصرتی برای دین بود نصرتی برای خودشون در روز آخرت این که پاداش علائم عملشون تکتاد براش نوشته میشه تازه که طلابی که میان اینجا درس میخونن نماز یاد میگیرن روز برای کی نوشته میشه مؤسس و بنیانگذار این نهاد پاداشو شده و اون خیری که پول داده اون هزار دومنی که سوی سندوقی مدرگت گذاشته تمامی کسانی که صحیم بودن عجر ماها رو به جیب می زنن. در روز قیامت خدا نصرتشو میده. ده اولیه اونها هست این فضیلتشیه فضیلت اسلامه و اتمام تو علیکم نعمتی بس اتمام نعمت کرد خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت را خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت رو به ما یاد داد اتمام کرد ناقص نیست توش نیست اتمام اتمام تو علیکم یعنی اون نعمت دینی تمام شد دیگه نیازه به من و تو نیست که بیام دین رو تمام بکنیم کامل بکنیم همونطور که امام مالک رحم الله میگه میگه کسی ادعا بکنه بدعت حسنه ای در دین هست ادعا کرده که رسوخ خیانت بر امت کرده دین ناقصه تا اگر گفتی بدعت حسنه ای هست این کار نیکیه که پیانبر انجام نداده تو داری اختراعش میکنی به وجودش میریف مثلا رسم رسول مثل مولودی و نمیدونم معراج و این مراسم اگر فکر میکنه که این بدعت حسنی هست که پیانبر انجام نداده دین خوبی هست پسندیده هست که رسول خدا انجام نداده امام مالک رحمه الله میگه که چی؟ میگه این ادعای تو ادعای خیانت رسلاه بر امت یه چیز خوبی بوده بله به امتش؟ نگوفته رسول الله صلی الله علیه و سنت در ته مسلم داری رسول الله صلی الله علیه و سنت بفرمایان هیچ امر نیکی نبوده جز اینکه من به امتم گفتم و هیچ امر شرری نبوده مگر اینکه من امتم را پذیذ دادم ازش یعنی تمامی نیکی ها تمامی خوبی ها را برای امتم گفتم و این نص آیه قرآن اتمام تسلیکم نعمتتی اتمام نعمت مگر با جزء ابلاغ رسول الله میشه رسول الله صلی الله ابلاغ نکنه اتمام نعمت میشه دین کامل میشه خیر دین کامل شد دیگه نیازی به من و شما نادر دین مال خداست و خدا هست این دین رو بر ما کامل کرده و نیازمند ما نیست که ما بیم برای خداوند دینی را بسازیم و تعیین کنیم آیات و نصوسی که در قرآن اومده مثلا فرمینه یورس لسما علیکم میدار و کس اگر نوح به قومش میگه لوط به قومش میگه راهم میگه ایمان بیارید شرک را رها بکنید درهای آسمان بر شما باز میشه رزق روزی به شما بیاد نه بعد از خداوند دیگه یا شاید یک شخصی از ما گلایه بکنه از حال خودش بده پس من چرا مفقرم من که توحید دارم من که اخلاص و عبودیت دارم چرا فقیر چرا خود رسول الله فقیر بود شاید کسانی مثلا اینطوری وارد بشن به شریعت یعنی اینطوری وارد بشن و بیان اعتراض بکنن رسول الله صلی الله علیه و آله فقیر نبود توجری بود درسته وقتی که هجرت کرد از مکه مدینه مالش راها کرد اومد به مدینه به دینش چترانی داشت اصلا کار می‌کردی که تجارت میکرد با مال خدیجه مالم واللهش رسالت راهی کرد مالم مالش بله سالیانی بود چندین سال جنگ بود نبرد بود تحریم اقتصادی بود مال رسول الله ص در دست کفار و مشرکین بود رسول الله ص آتشی در خنش بلند نمی‌شد مالی هم که به دست می‌ورد از غنیمت می‌داد در راه خدا برای جهاد و برای علای کلمه توحید می‌داد در راه خدا این حبی رسول الله الله علیه و سلم قولی که به شما در راه خدا می‌داد فقیر نبود چون جا در حدیث دارین در سنن ترمذی رسول الله صلی داشت عمر نزدش مهمونی داشت رسول اون سالا رفت که یک گوزی تازه به دنیا اومده پس برای مراعات حال گفت ان لنا غنم می تو ان شرمندگی نکنن گفت لنا غنم كل ما ولدت لنا ذبحنا ما گفت گفت یکی شد یکی من 100 تا گوز دارم ما 100 تا اگر یکی جدید به یکی به ذرف میکنی دیگه میگشین رسول الله مال داشت نداشت مال داشت در حجۃ الوداع صد تا شطور قربانی میکنین ماله مال بد نیست انتم اعلی و بول امر دنیا خودتون بهتر میدید و خدا هست که در روزی برای کسی باز میکنه برای کسی از باب امتحان ابتلا میبنده نه اینکه خدا نمیخواد نصرتش بده نه اینکه خداوند نمیخواد در روزی رو بهش نه لیاقت های ما بندگان متفاوته و خداوند حکیم در کارش شاید مال به من داد من گمراه شدم طغیان کردم ظلم کردم فجور کردم فاسق شدم خداوند حکیمه در کارش خداوند در روزی را واسط میکنه برای کسانی که موقعیتش موقعیتشو داشته باشن برای کسانی که احلیتشو داشته باشن اهل خدا باشن از خدا بترسن جا و جایگاه و مکان و زمان داره برای خودش میخواد اینطوری نیست کار خدا سرسری نیست که همینطوری بدون حکمت خداوند روزی ها را تقسیم بکنه سپس خداوند گفت و ورضیتو لکم الاسلام دینه بر شما اسلام راضی شد سوالی که مطرح میشه اسلام بر ما راضیه من الان مسلمان شدم خداونم از من مسلمان راضی هست یا می کون اسلام رو مسلمان شدم تسلیمم رو خدا شدم خداوند بر اسلام مسلمان ها راضی هست یا نه؟ بله رضایت از اسلام هر مسلمانیه خداوند. هر کسی اسلام حتی که با... اسلام این رضیتو لکم الاسلام که اسلام الليوم اکمهتو لکم دینه کبتمن تو نعمت ورضيت لكم الاسلام كدم اسلام على الاسلام كدم اسلام اسلام الرسول صلى الله عليه وسلم خداوند از اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. اعلان رضایت کذا این فرقه حدیث فرقه ناجیه این آیه چی مهره صد بر حدیث فرقه ناجیه یعنی چی فرقه ناجیه فرقه ناجیه نفس شی مگه امت افتاد و اندی فرقه میشن همه در جهنم ال بندازای گناهانشون به درتشون میسوزن الا نجاتی آفتن اون یک گروه یک دسته کین ما انا علیه اليوم اون چیزی که من امروز برش هستم اون اسلامی که خدا ازش اعلان رضایت میکنه رضیتو لکن الاسلام اون اسلامی که خدا ازش اعلان رضایت میکنه میشه اسلام انسان مثل اسلام رسول الله صلی اللہ علیه بشه و بعد خدا به من باون منده عذاب بده جواب بله یا نه خیر اسلام حدیت نمازت روزت اطاعت فرمونداری به خداوند مثل رسول بشه بعد خدا عذاب بده خدا تلعیز قال بشه خیر همانطور که رسول الله صلی الله علیه و نجات یافتو هم نجات پیدا میکنین و رضیت الکتوم اهل اسلام اعلان رضایت خداونده وقتی خدا از بنده راز... از بنده راضیه میاد عذابش بده خیر خداوند عذابش نمیده این آیه الیهم رحمت الکتوم دینکم بعدت این مسئله که بیان شد نعمتایی که خدا داده و دینی که بر ما کامل ساخته خداون این فضیلت ها را گفته که ما شود گذار و سفاظ گذار و خدا باشیم خدا میخواد منت خدش را برما بگه ای بنده تو مدیون منی منم که توفیق اسلام را به تو دادم منم که به تو اسلام دادم منم که به اسلام فضیحت دادم تو مدیون خدایی خدا مدیون تو نیست تو مدیونی کی هستی مدیون خدایی تو باعر شود گذار خدا باشی با توجه به این نعمت هایی که بهت داد و این نعمت ها اگر شبگذارش شدی ولی این شکر تو حسیده نه خدا بیشتر به حسیده انسان باید همیشه و شبگذار سپاسگذار خدا باشه و بیاد اووردن این نعمت ها بیاد اووردن این نعمت ها سبب و وسیله ای برای محبت خداونده و محبت دینش یعنی اگر بیاد اووردی که تو مسلمانی مسلمان زهری خدا دین اسلام رو به تو انتخاب کرد اگر اگر به چشت اومد این نعمت این فضیلت تو میشی سفاظ گذار اگر به چشت نمیاد این فضیلت این قد این منزلت این مکانت اگر به چشت نمیاد لذت و تعم خوشی این اسلام نچشیدی بدون کتون محروم چشیدن طعم اسلام و این که خدا اعلان از اسلام. و مسلم د د د د در قلب الانسان محبت و اخلاص و عبودیت و بندگی مياره رضایت مياره توم عنیل مياره كما قلتیم از فضلات اسلام که قبلن بیان شد اليوم اكملتو لكم دینكم اتمنتو عليكم نعمتی و لكم الاسلام و ما قلتیم اليوم اكملتو لكم دینكم دين کامل شد درست؟ دین شامل چیه؟ نماز، روزه، حج، زکاة، اجرای حدود، حکام الهی استعفوا فرمن داري قل الله واتقوا الرسول وما اتاكم الرسول فاخذوا منه فانتهوا ايمان واثبات مسائل غيبي ديما الملائكه قال من الايمان انتو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره اايا ان چیز هاي که الان بیان شد از اون عبادت های بدنی عبادت های اعتقادی عبادت های زبانی شهادت از این عبادت های مختلف اايا جزء اینن که همه اینها از دینن الا ایمان و بضع شعبه اعلاها شهادت و ان لا اله الا الله ایمان یهم اسلام تف... گفتید اگر کلمه به تنهایی بیاد اسلام ایمانه و ایمان با فرقی با هم نمیکنه ایمان افاد و اندی شعبه داره بالاترینش زبان قول به زبان شهادتین پایینترینش طور و قاشاک از کوچه و خیابان جمع کردن جلو مردم جمع کردن والحیاء شعبه من الايمان قول به زبان و اعمال به جوارح و اعمال قلب والحیاء شعبه شعبه کل اسلام و کل مسائل ایمانی را بر ما کامل بکنه چیزی از امور دینیمون چه به مسئله مسائل اعتقادی بر بگرده ایمانی ور بگرده توفیدی ور بگرده چه مسائل تعبدی و عبادت ها ور چیزی از اینها ناقص نمونده دیگه اسلام نیازی به عرصع داره نداره نداره دیگه دین نیازی به سقرات نداره دین نیازی به نیچه نداره دی نیازو به فنها داره نداره نداره دین دیگه نیازمند اینها نیست دین نیازمند هیچ کسی نیست چون دین ماله کیه این دین عند الله الاسلام دین مال خداست و خدا هست که از یک دین اعلان رضایت کرد و آنم دینی کی بود دین رسول الله صلی اللہ علیه و سلم علیه امکمت لکم دینکم و اتبا مطحق لکم نعمت این نعمتی که کسی که میخواد حیاتت لیره خواهد داشت. کسی که خوبی و خوشی و خوشبختی خودش رو در این دین خدا بهش خواهد داد خدا هم ازش راضی خواهد بود دین چیه در دین؟, دین اصل دین در لغت اون چیزی که دیدن انسانه یعنی اون چیزی که انسان گفته شده در لغت چیزی که انسان ملترزه بهش اون چیزی که پایبند بهش گفته شده دین از پایبندیه دین از التضامه یه چیزی که انسان بر خودش ملزم گفته شده در لغت اینه. عشان که دین خدا در قرآن تعریفش می‌کنه ان الدین عند الله هو الاسلام یعنی اسلام تسلیم شدن به اوامر خدا خدا خدا اصل دین اینه و در هم به معنی استسلام میاد ما کان لیاخذ اقاه فی دین الملك دارقتی دین پادشاه مصر که همون دینش بود قانون‌هایی که گذاشته بودن برای اسارت یا بردگی دزد در شأن برادرش یوسف وقتی که تهمت دوزیر روش میاد بعد یوسف نمیخواد بر اساس قانون پادشاه مصر بر برادرش شک بکنه الزامات ملزومات ای منظور من کلمه دینی ما کان لیاقذقه فی دی فی دینی الملك گفت دین ملک منظور از دین اون قانون ها و الزامات و مستلزمات قانون پادشاه مصر بود بعد دین اون مستلزمات یک انسان که خدا ازش واسته چه از امور گفتیم اقتصادی بخواد باشه و با... چه میخواد از امور تعبدی باشه و یه بعدی که اشاره بشت میکنه فرموده به خدوان قل یا ایوه الناس این کنتم فی شک من دینی فلا اعبداللدین تعبدون من دون الله ولكن الله الَّذِي يتوفاكم بچه این آیه در فضیلت دین چیه؟ اینجا خدوان داره بگه قل یا ایوه الناس این کنتم فی شک من دینی اگر شما در دین من شک دارید من چیم؟ در دین خودم با شکم یا با من با یقینم اگر شما شک دارید من روی یقینم من شک ندارم ان کنتم فیشد اگر شما در شک شك و شکوکی ترادت دارید فلا اعبدو الذي تعبدون من دون الله من شک در بطلان این معبودات شما بطهای شما ندارم و هیچ کنون میشونم من شک ندارم اینا باطلا فلا اعبدو اللذی تعبدون من دون ام ولکن اعبدو الله اللذی یتوفق که من خدای خدایی یکتاره ببرسم که شما را می امیرانند بجه اصطناد به این آیه بجه اصطناد به این آیه در اینه که علم خسن علم به توحید علم به اسلام صحیح علم به روش رسول الله خیلو الهدی هدیو محمد بهتین روش روشه کیه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم علم به روش پیانبر صلی الله علیه وسلم به انسان قوت یقین میده قوت بسیرت میده شک از دلش سی این ارزش و فضیلت چیه؟ اسلام. ارزش و فضیلت در این آیه خداوند نسبت به الله الله علیه و سلم و نسبت به هذه سبیلی ادعوا الله على بصیرة انا هر کسی که با علم صحیح برجل الله صلی الله علیه و سلم اومده نه الله اومده نه با علم كرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سینا و پارابی که ره به راه ارستو بودن با علمی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او برده راه نجات ما در راه کیه راه رسول و, و این راه به همون چی میده تو معنینه و, معنین و اطمینان و یقین بعدم شک فلاصفه و اهل کلام اهل شک بودن یا اهل یقین جز اصول اعتقادی اهل کلام چیه شک در همه چی شک داشته باشی این اصول اعتقادی کیه اهل کلام در خدا شک بکن میگن که برگشت از اعتقاد فوتنش که خیلی از مسلمانزاده ها که ادعای اسلام دارن این زند بازی و کفر و الحاد استین هاکی را به سینه می زدن و همچنا رو میزنند. هرچنگ خودش برگشته از این اعتقادی که این دنیا از اسف به وجود اومده و به وجودورنده ای نداشته همینطوری به وجود اومده خود ین هاکی آخرم اخیرا برگشته مقا می از اعتقاش برین همچنان طرفداران بدداترین سروش و این مفکرین هم از این شق در الحادش و شکش نسبت به خداوند دفاع می‌کنه میگن از کجا منوشات استهلاکی راست بیاد سبحان الله خداوند در قرآن میگه اف بالله شک شکی داره خدا مؤمن چی میگه مسلمان چی میگه این فضیلت اسلامه ما میگه نه شکی نیست بلکه اون شخصی که اسلامش اسلام رسول الله صلی نیست اسلامش در شک و تردیده اسلامش حقیقی واقع هر دو در دل شک اومد تردید اومد بدون که اسلامت لغزش اومد بدون که اسلامت اسلامه حقیقی نیست اسلامت اسلامه که خدا ازش اعلان رضایت کرده اسلامی که بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده و فرستاده شده رسول به سوی اون اون اسلام حقیقی نیست چون اگر اون اسلام بود شکی درش نبود تزلزل فکری استراب فکری نتیجهش اینه نتیجهش بیعلمی و عدم اقتناع و قناعت به حدی رسول الله صلی الله علیه و سلم بخدا رحم در جامعه خودمون کسانی به اسم دین حجاب را انکار میکنند طلبه مازه سیدینی درد میخونن ولی میگن که کجا اومده تو قرآن که حجاب از روی سر بندازی مو بیرون نیاد ساق پات بیرون نره دارید کجا اومده خدا در قران گفتید ندین علیهن من جلابیهن جلبا رو روی سر بند تا پایین خب حدی مسلمانان اسلامی که خدا گفت ربیتو لکم الاسلام حدی اونها چی بود در زمان اسلامی که نازل شد این اسلامی که خدا الان رضایت کرد چطور بود آرایش بکنن موهاشون بیرون بکنن ساقتاشونو بیرون بکنن یا صورتشون بیرون بکنن چی بود هیچکدوم از اینها این تا جایی که عایشه رسمات صلی الله علیه و وقتی که منعشو میکنه در حج در حج از اینکه نقاب نپوشن عایشه ام المومنین میگه نامحرمی رد نمیشه الا اینکه من صورتمو با گوشه چادر ام میشدن که صورتمو هیچ شخصی نمینه امهات المومنین قذوه و الگو برای تمامی زنان مؤمن درس اختلاف بین علما در بحث مود و در بحث قرص صورت که آیا عورت عورت نیست بلی ایک به اتفاق مو عورته به اتفاق ساقدت عورته به اتفاق الان این مفکرینه الان اصل حاضر چی میگن میان تشکیک وارد میکنن در ضروریات هر چیزی که معلوم به ضروره هست که همه میدونه تن مادرم و مادر شما میدونه وقتی که قدیمه مطمئن ما از توچه بد میشدیم ما بچه بودیم اون زن خودش رو به دیوار می میچسبوند صورتش رو به دیوار میکرد همینا هم حث ولی زره ها میری زن اون زن با حیا فوراً صورتش رو به دیوار میکنه این این حیا و این عفت و این پاکدامنی و این دینداری بهش به اسم تخلف و عقب افتادگی نگاه میکنه میگه شما فقط چسبید حجاب بپوش نقاب بپوش موها زیرو نشه این چیه این ظاهرنگریه میگه جز به این ظاهر به ما مکلف کرده مگر این ظاهر جزء با اصلاح باطن به وجود میاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمى على ان في ألا إن في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد صلاحه وبي ونقي ودرستي كيردار رسول الله مثلا داين حديث بقلب متعلق قلب ده دروست درست بيشان خب اذا قلب فاتشوت واذا فسدت احمونها فاست مشت توكي خرابي فكرة خرابه فكره جمره فكره نوصالهه بالنسبه للشريعه عامه تهمني بيشان چون تو راضی نیستی به شرع رسول الله صلی اللہ علیه وسلم تو کفایت قولت را در حدی رسول الله و زنان صحابیات امهات المومنین نمیبینی سبحان الله امهات المومنین آیشه میگه ما وقتی که مسجد میاممدیم زنان متلفعات بمروطهن یعنی خودشون رو مثل دیدیدید زخط تر بامپیچی میشه این تعبیر تشویحویحبیحی ما خویدیدیدو بمانی نماز صبح کی میومدین قبل از اینکه هوا روشم میشه نماز که تمام میشه فوراً برمیگشتیم به خودمون می... هیچ کس کوچ نشود ولی میگه خودمونم میپوشونیم با اون چادر های غلیظ تعبیر میکنه از چادرهای های که چشم نا محرم ما نخوره اونم ام المومنین ام المومنین مادر مسلمانونه ولی این کارو میکنه از باب اولا دیگر زنان باید این کارو داد بکنن و اینجوری حدی داشته باشند هیچ وقت گفتم هم تکرار داره تکرار نمیکنه هیچ وقت شک و تردید در دین و در مقابل تشریعات از قلب سلیم و سالم صادر نمیشه یک قلبی سالم یه قلبی قلب پاکی، استواره، محکمه، نسبت به دین هیچ وقت شک و تردید نمیاد این شک و این تزرزل و استراب فکری وقتی وجود میاد که انسان دینشو محکم نگرفته باشه و از دینش چیزی حالیش نباشه انسان باید بره دنبال دین تا این دین با یادگیری اون دین این فضیلت را کسب بکنم و امنیت یقین و تومانینه و آرامش و پاداش اخروی از رضایت خداوند در روز قیامت پس مضمون این آیه خلاصه این آیه تضمین خداوند برای بندگان بر استقرار و قرار و دوری از شبهات و شکوات گفتیم عدم استراابت در زندگی این دینی که رسول الله برش هست این دین درش دیگه استرااب و تزلزل نیست در الشيء استقرار وقيوميات واستقامات ومحكمي نا استراب نتكن قردان نا بختي شهدات بيات برميل بشهدات بكونا بنا بختي شبهات بيات در شبهات بوتبار بشه قاية بعدك انجو بشهر ميكون فاربطي القضبان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفل لكم الله غفور ورحيم که ایمان آوردید تقوا داشته باشید ایمان به با پیامبرش دوباره تکرار میکنه امینو بر رسوله ایمان به برش بیارید ایمان به خدا و ایمان به پیامبرش پاداش در مقابل... ایمان همون اسلام رو گفتیم در مقابل اسلام و ایمان پاداشیه یعطیکم کفلین من رحمت کفلین دو بهره دو سود دو سود و دو بهره هر چی از رحمت چقدر این اون سود و اون بهره اون رحمتی که قراره است دو تا از اون رحمتای بزرگ خداوند خدا قراره به اون بنده بشه چیه الله اعلم چه حد از رحمت می‌خواد بده به اون بندش خدا میدونه خدا گفته دو تا بهره از رحمت دو تا بهره از رحمت بهش می‌دی کسی که چی ایمان آورد به خدا و رسولش یعطيكم کفلین من رحمته اولین پاداش اولین فضیلت دومین فضیلت حالا این رحمت رحمت در دنیا هست در آخرت هم رحمت در این دنیا معجز مرحومی می‌شید hamota ke sahaba marafa mushudun radiyallahu anhum wa radiu anhum wal ladina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum ma juz zikatani be sheke khodae azizam radi mushe ni nazare hamate khodavand rahmat khodavand hamota dar ayat qabli dashti rezayat khodavand va tumaninah va aramash ina rahmate va rahmat dar rooz e akhirat najat az azab jahannam yutukum kiflaina min rahmatih wa yaj'al lakum nura nur zed tarighi va yaj'al lakum nura نور در قرآن و سنت گفتم قبلا اشاره کردم بنسبت خدا میاد قرانش بنسبت پیامبر خدا میاد و بنسبت دین اسلام میاد خجااکم من الله نور و کتاب مبین نور کیه رسول الله صلی الله و سنتش نور خجااکم من الله ا طرف خود و کتاب مبین قران همونطور که بعض از مفسرین گفتن گفتن که چون اینجا حرف بر کتاب اینجا رسول الله صلی الله علیه و سنت گفتن که بحث این نور نور اسلامه علا کلن چی میخواد اسلام باشه اسلام معهوده اون اسلامی که رسول الله بر اون فرستاده شده اون اسلامی که در اون زمان بوده نور اسلام خداوند به انسانی که اهل دین شد اهل ایمان شد رحمت میده دو تا رحمت و نوری میده که میان مردم از تاریکی ها نجات بیا این نور متفاوته نوری که امام شافعی رحمه الله داشت پیروانش بعد امام شافعی داشتن ماهانی که مثلا خودمون منتسب میکنیم به ما ماها داریم این نور برات صد داره قوت این نور به قوت علم و بصیرت و درک ما برمیگرده هر چقدر درایتمون فهممون شناختمون نسبت به اسلاممون اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و روش بود هر چقدر بیشتر باشه روشنایی اون نور قوت اون نور بحری که از اون نور خواهیم برد در تاریکی های دنیا بیشتر خواهد شد صلی الله علی محمد